احترام به دیگری بدون شناخت او میسر نیست. اگر توجه و احساس مسئولیت با شناخت و دانش رهبری نشود، هر دوی آنها کور خواهند بود. دانش نیز اگر به وسیله علاقه و توجه برانگیخته نشود، خالی و میان است. دانش درجات بسیاری دارد. دانشی که یکی از جنبه‌های عشق است، دانشی دانشیست که سطحی نیست بلکه تا عمق نفوذ می کند چون این دانشی تنها موقعی امکان پذیر است که من بتوانم بر علاقه خود فائق آیم و دیگری را چنان که هست ببینم مثلا من ممکن است بدانم که فلان شخص تند خوست گرچه این را آشکارا نشان نداده باشد اما می توانم شناخت خود را نسبت به او امیغ تر سازم. در نتیجه می فهمم که او مسترب و نگران است. احساس تنهایی و یا احساس گناه می کند. به ترتیب در میابم که اوقات تلخی و عصبانیت او تظاهر چیز امیغ است. در نتیجه متوجه می شوم که او فردی مسترب و ناراحت است. یعنی انسانی که رنج می کشد. و نه آدمی که فقط بدخو و عصبانی است. دانش ارتباط باز هم اساسی تری با مسئله عشق دارد. احتیاج اساسی درآمیختن با شخص دیگر به منظور فائق آمدن بر زندان جدایی با یکی دیگر از آرزوهای خاص انسانی پیوند بسیار نزدیکی دارد. آرزوی آگاهی به راز انسان زمن اینکه حیات از جهات بیولوژیک صرف آن خود معجزه و رازی است انسان از جنده های برای خود و برای هم نوعانش رازی ناگشودنی و دست نیافتنی است ما خود را میشناسیم. شناسیم با تمام کوششی که در این جهت می نماییم خود را نمیشناسیم. ما هم نوعان خود را میشناسیم. ولی در عین حال آنها را نمیشناسیم زیرا که شیع نیستیم و هم هم شیع نیستند هرچه بیشتر به عمق هستی خود یا دیگری پی میبریم به همان میزان موضوع و هدف شناخت بیشتر از ما میگریزد با وجود این خواه ناخواه آرزو میکنیم که به راز روح بشر پی ببریم و به درونیترین کانون هستی او دست پیدا کنیم. تنها یک راه برای دست یافتن به این راز وجود دارد که راهی بس دشوار و مایوس کننده است و آن تسلط کامل بر دیگری است تسلطی که او را وادار می کند هرچه می انجام دهد هرچه می خواهیم فکر کند تسلطی که او را به یک شیء تبدیل کند شیعی که در تملک ما است حد نهایت کوشش برای شناختن را ما در سادیسم یعنی اشتیاق و توانایی آزار رساندن به دیگری می‌بینیم در این حالت فرد سادیست میخواهد با آزار و شکنجه انسانی دیگر را وادار به فاش ساختن راز خیش سازد در اشتیاق ما به نفوذ در راز هستی انسان و گشودن راز هستی دیگری و خودمان انگیزه اساسی برای ستمگری و ویرانگری نهفته است چگیده ای این مطلب را آیزاک بابل به خوبی بیان کرده است او گفته یکی از افسران همقطارش را در جنگهای داخلی روسیه که به تازگی فرمانده خود را زیر لگت کشته بود به این شکل نقل می کند. با استفاده از گلوله یا به عبارت دیگر صرفاً با استفاده از گلوله آدم فقط از دست دشمن خلاص می شود. با استفاده از گلوله، آدم هرگز نمی تواند به روح و آنجای که روح در آن جای دارد و اینکه چگونه خود را نشان می دهد دست پیدا کند. ولی من هیچ ابایی ندارم. بارها شده که دشمنی را ساعتها زیر لگت کوبیدم. راستش می خواهم بدانم زندگی واقعا چیست. می خواهم در این مدت بفهمم زندگی چه شکلی دارد. ما در کودکان این مسیر کسب دانش و شناخت را غالبا با وضوح کامل مشاهده می کنیم. بچه برای اینکه چیزی را بشناسد آن را می شکند و تکه تکه می کند یا جانوری را می کشد و پاره پاره می کند و ظالمانه بالهای پروانه را می کند برای اینکه آن را بشناسد و راز آن را بیرون کشد بیرحمی و ظلم نتیجه انگیزش عمیق است و آن اشتیاق به دانستن راز اشیاء و زندگی است راه دیگر شناخت راز عشق است عشق عبارت است از نفوذ فعالانه در شخص دیگر که ضمن آن اشتیاق به شناخت در نتیجه وصل آرام می شود. در عمل وصل و آمیختن من شما خود و همه را می شناسم. و هیچ نمی شناسم من به تنها طریقی که امکان دارد انسان موجود زندهی را بشناسد او را شناختم دست یافتن به وصل نه به وسیله شناختی که اندیشه بتواند آن را ارائه دهد انگیزه سادیسم میل به شناخت اسرار است با این وجود انسان مثل گذشته نادان باقی می ماند. من بند بند موجودی دیگر را از هم جدا میکنم. اما حاصل کارم فقط نابودی اوست عشق تنها راه شناخت است که در عمل وصل به تمنای من جواب می دهد. در حین عشق ورزیدن و ایسار خیش در حین نفوذ در شخص دیگر خود را می یابم. خود را کشف می کنم هم او و هم خود را کشف می کنم. و انسان را کشف می کنم شوق شناختن خود و انسان در این شعار دلفی به نحوه احسن بیان شده است خود را بشناس خودشناسی رکن اصلی علم روانشناسی است ولی تا آنجا که آرزوی ما دانستن همه چیزهای مربوط به انسان و راز درونی او باشد این آرزو هرگز نمی با دانش معمولی یعنی دانش فقط از راه تفکر برآورده شود حتی اگر شناختمان نسبت به خود هزار مرتبه بیشتر شود باز هرگز به ژرفای آن نمیرسیم. کماکان برای خود معمایی باقی میمانیم، همانطور که هم نوعانمان هم برای ما معما باقی میمانند. تنها راه رسیدن به شناخت کامل از طریق عمل عشق است این عمل از هیته کلام و تفکر فراتر میرود. این همان قوت شدن دلیرانه در تجربه وصل است لیکن شناخت از راه تفکر یعنی شناخت روانشناسی شرط لازم شناخت کامل از طریق عشق است ما مجبوریم خود و دیگری را به طور اینی بشناسیم تا بتوانیم او را به طور واقعی ببینیم یا صحیحتر بگوییم به توهمات و تصویر غیرمنطقی و مخدوشی که از او داریم، غلبه کنیم. من تنها وقتی انسانی را به طور اینی شناختم، می توانم عمل عشق، جوهر قایی او را بشناسم. مسئله شناخت انسان، همانند مسئله عدیان در شناخت خداست. در سنت دنیای غرب کوشش بر این است که خدا را از راه تفکر بشناسند و در باره خدا اظهار نظر بکنند فرض بر این است که من می توانم خدا را به کمک تفکر خیش بشناسم در عرفان که نتیجه منطقی یک پرستی است کوشش برای شناخت خدا از راه تفکر از بین رفته و جای آن را وصل و یکی شدن با خدا گرفته است که در آن نه جایی برای کسب دانش درباره خدا باقی مانده، نه نیازی بدان است. وحدت با انسان یا از دیدگاه دینی تجربه وصل با خدا به هیچ عنوان غیر منطقی نیست. برعکس، همانطور همانطور که آلبرت شایتزر بدان اشاره کرده است، نتیجه منطقی فلسفه گرایی و نتیجه جسارت آمیز و ریشه‌ای آن است. این وحدت بر مبنای محدودیت‌های اساسی نه تصادفی دانش ما از شناخت ماست اعتراف به این است که ما هرگز نخواهیم توانست راز انسان و جهان را درک کنیم اما با این حال در عمل عشق می توانیم راز آنها را بشناسیم روانشناسی نیز به عنوان یک علم دارای محدودیت است و از آنجا که عرفان نتیجه منطقی است نتیجه نهایی روانشناسی عشق است. دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانش همه متقابلا به یکدیگر واب اینها مجموعه علایم گرایش هایی هستند که در انسان بالغ که نیروهای خویش را به صورتی س بخش پرورش داده است پیدا می شود انسانی که فقط طالب چیزهایی است که خود برای آن زحمت کشیده است رویاهای خودپرستانه آگاهی بر همه چیز و تسلط بر همه چیز را از سر بیرون کرده است و به فروتنی ناشی از قدرت باطنی یعنی چیزی که حاصل فعالیت واقعا ثمر است دست یافته است من تا اینجا درباره عشق به عنوان عامل قلبه بر تنهایی و رسیدن به آرزوی وصل صحبت کردم ولی بالاتر از نیاز همگانی و وجودی آدمیان به وصل یک نیاز خاص بیولوژیک وجود دارد آرزوی وصل و پیوند بین دو قطب مزکر و موننس این نظریه دو قطبی شدن به طور برجسته‌ای در این افسانه کهن به طرز جالبی بیان شده است. در این افسانه آمده است که نخست زن و مرد یکی بودند. بعد به دو نیم شدند و از آن پس هر دو به دنبال نیمه گم شده خود می‌گردند تا دوباره با او درآمیزند و یکی شوند. همین نظریه پیوند اولیه زن و مرد در کتاب مقدس در مورد به وجود آمدن هوا از دنده آدم نیز آمده است. گرچه در این داستان روح پدر سالاری وجود دارد و زن را نسبت به مرد در درجه دوم اهمیت قرار می دهد. معنی این افسانه به اندازه کافی روشن است. دو قطبی شدن جنسی انسان را به جستجوی مشخص یعنی وصل با جنس مقابل سوق می دهد. اصول دو قطبی بودن مذکر و معنس در درون هر مرد و هر زن نیز وجود دارد. درست همانطور که زن و مرد از نظر فیزیولوژیکی هر کدام دارای هرمونهای جنس مقابل است، آنها از نظر روانی نیز دو جنسی هستند. آنان اصل دریافت کردن و نفوذ کردن، اصل ماده و روح را در درون خود دارند. مرد و همچنین زن تنها زمانی در درون خود به وصل می رسد که دو قطب مزکر و با هم یکی شوند. این دو قطبی بودن اساس تمام قدرت های خلاقه است. دو قطبی بودن مذکر و معنیس همچنین اساس آفرینندگی متقابل بین انسان هاست. از نظر بیولوژی این عمل طبعاً به دین است. که وحدت اسپرم و اوول اساس تولد کودک است اما در قلمرو روانی مطلق نیز یکسان است با به وجود آمدن عشق بین زن و مرد هر کدام از نو متولد میشوند کسانی که به انحرافات همجنسگرایی گرایی گرفتارند از عدم توانایی رسیدن وصل دو قطبی رنج میبرند درست مانند افراد معمولی که از عشق ورزیدن عاجزند همین اصل دو قطبی بودن مذکر و معنس در طبیعت نیز موجود است نه تنها در آنچه به طور آشکار در حیوان و نبات دیده می شود بلکه در تمایل دو قطبی کارکردهای اساسی یعنی دریافت کردن و نفوذ کردن نیز دیده می شود همانند دو قطبی بودن زمین و باران رودخانه و اقیانوس شب و روز تاریکی و روشنایی و روح و ماده این نظریه را مولای رومی شاعر و عارف بزرگ مسلمان به نحوی زیبا بیان کرده است هیچ عاشق خود نباشد وصل جو که نمعشوقش بود جویای او چون در این دل برق مهر دوست جست اندران دل دوستی میدان که هست در دل تو مهر حق چون شد تو. هست حق را بیگمانی مهر تو. هیچ بانگ کفزدن ناید بدر. از یکی دست تو بی دستی دیگر، حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را آشغان همدگر. جمله اجزای جهان زان حکم پیش جفت جفت و عاشقان جفت خیش. آسمان مرد و زمین زن در خرد. هرچه آن انداخت این می پرورد. چون نماند گرمیش بفرستدو چون نماند تری و نم بدهدو هست سرگردان فلک اندر زمن همچون مردان گرد مکسب بهر زن وین زمین کدبان و ویها کند، بر ولادات و رزا اش می تند. پس زمین و چرخ رادان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کند. گرنه از هم این دو دل میمزند پس چرا چون جفت در هم میخزند خزند بی زمین کی گل بروید ورقوان پس چه زاید زابوت به آسمان میل اندر مرد و زن حق زن نهاد تا بقا یابد جهان زین اتحاد میل هر جزوی به جزوی هم نهد اتحاد هر دو تولیدی زهد روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند لیک هر دو یک حقیقت میتنند هر یکی خواهان دگر را همچو خیش از پی تکمیل فعل و کار خیش زان که بی شب دخل نب و طب را پس چند در خرج آرد روزها مسئله تمایل دو قطب مذکر و مؤنث بحث دیگری را در مورد موضوع اصلی عشق و جنس برمی‌انگیزد پیش از این به اشتباه فروید اشاره کردیم و گفتیم که او در عشق منحصرا تجلی یا والایش غریزه جنسی را میدید و تشخیص نمیداد که میل جنسی یکی از تظاهرات نیاز به عشق و وصل است ولی اشتباه فروید عمیق تر از این است او طبق فلسفه مادی فیزیولوژیک خود غریزه جنسی را تنشی میداند که در نتیجه فعل و انفعالات شیمیایی در بدن به وجود می آید که دردناک است و کام می جوید تا تسکین یابد هدف تمایلات جنسی از میان بردن درد ناشی از این تنش است و ارزای جنسی آنگاه دست می دهد که این درد از میان رفته باشد اعتبار این نظریه فقط تا این حد است که نشان میدهد که میل جنسی نیز مانند تشنگی و گرسنگی به هنگام ارگاسم باید ارضا شود بنابر این مفهوم میل جنسی یک میل مفرط و التهاب باور است و ارزای آن نیز از بین بردن این میل باور می باشد. در حقیقت اگر این نظریه را قبول داشته باشیم باید استمنا را آلی ترین راه سیراب کردن میل جنسی به شما را وریم. آنچه که فروید به طور اپامامیزی بدان بیتوجهی می کند جنبه روانی بیولوژیک مسائل جنسی تمایل دو قطب مذکر و معنیس و آرزوی پیوند این دو قطب از راه وصل است احتمالاً پدر سالاری مفرط فروید او را به سوی این اشتباه عجیب سوق داد و او را بران داشت تا جنسیت را در نفس خود دارای کیفیت مزکر بداند و در نتیجه از امور جنسی زن بیخبر بماند. فروید این نظریه را در کتابی موسوم به سه مقاله بر نظریه جنسی بیان کرده است و میگوید که لیبیدو همیشه دارای دو ماهیت مزکر است. سرف نظر از اینکه در زن وجود داشته باشد یا در مرد همین اندیشه به صورتی اقلانی شده در نظریه فروید آمده است پسر بچه کوچک زن را همانند یک مرد خاجه تلقی می کند و حتی خود زن دائما به دنبال آن است که به وسایل مختلف فقدان آلت تناسلی مردانه را جبران کند ولی زن مرد خاجه نیست و جنسیت او اختصاصاً زنانه است و طبیعت مردانه ندارد. نیاز به از بین بردن این تنش فقط تا حد ناچیزی جاذبه جنسی را بین دو جنس مخالف برمی‌انگیزد. این جاذبه به طور عمده نیاز به وصول با جنس مقابل است. در حقیقت جاذبه شهوی به هیچ عنوان منحصراً در جاذبه جنسی تظاهر نمی کند. مردانگی و زنانگی نه تنها در عمل جنسی وجود دارد بلکه در صفات و تنش شخص هم وجود دارد منش مردانه را به نفوذ رهبری، فعالیت، نظم و حادث جویی می توان تعبیر کرد در صورتی که منش زن با کیفیاتی از قبیل پذیرندگی بارآور حمایت، واقع گرایی، تحمل و صفت مادری مشخص میشود. اما باید این را همیشه در نظر داشت که این دو دست خصوصیات با هم آمیخته‌اند. منتها در هر کدام بسته به مرد یا زن بودن، آن صفات برتری دارند. بسیاری اوقات اگر صفات و منش مردانه مردی به سبب آنکه از نظر عاطفی در عالم بچگی مانده است، ضعیف شده باشد، آن مرد همباره سعی می کند این کمبود را منحسرن با تکیه روی نقش جنسی مردانه خیش جبران کند نتیجه آن دنجوان است که ناچار است شهامت مردانگی خود را در امور جنسی به اثبات برساند زیرا به مردانگی خود به معنای مورد نظر علم منش شناسی اطمینان ندارد هرگاه عجز مردانگی از این هم شدیدتر باشد سادیسم یعنی استفاده از زور جانشین عمده یا منحرف آن می شود اگر احساس زنانگی تضعیف یا منحرف شده باشد مازوخیسم یا میل به تصاحب جایگزین آن می شود فروید را به سبب ارزش زیاد از حدی که برای مسائل جنسی قائل شده است انتقاد کردند انگیزه این انتقاد تمایل به حذف آن قسمت از نظام فروید بود که مردم کهن پرست و سنتی را به انتقاد و خصومت برمیانگیخت. فروید با تیزبینی وجود این انگیزه را احساس کرد و درست به همین دلیل با تمام قوا در مقابل هر کوششی که میخواست در نظریه جنسی او تغییری به وجود آورد، مبارزه کرد. در واقع در آن دوران نظریه فروید خصلتی انقلابی و مبارزه جویانه داشت اما آنچه در سال 1900 درست بود دیگر نیم قرن بعد درست نیست سنن جنسی آنچنان تغییر کرده است که نظریهای فروید دیگر برای مردم طبقات متوسط قرب دهنده و وحشتناک نیستند و امروزه انقلابی بودن تجزیه و تحلیلگران متعصبی که به دفاع از نظریات فروید برمیخیزند به خیال اینکه آنها هنوز هم دلیرانه و بنیادی هستند بیشباهت به انقلابی بودن دنکی شد نیست. در حقیقت نوع روانکاوی آنان مسالهگر و همرنگی با جماعت است. و از نظر روانشناسی مطالبی را مطرح نمی کند که منجر به انتقاد از جامعه معاصر گردد. انتقاد من از نظریه فروید این نیست که او روی مسائل جنسی زیاد از حد تکیه کرده است، بلکه به سبب این است که او نتوانست امور جنسی را عمیقا درک کند. او اولین گام را در راه کشف اهمیت و جانات ناشی از روابط متقابل اشخاص برداشت و مطابق با بنیانهای فلسفی خود این مطالب را از نظر فیزیولوژی مورد بحث قرار داد. اما با پیشرفت روانکاوی لازم است با انتقال بینش فروید از فیزیولوژی به ابعاد بیولوژی و وجودی نظریه ای را که وی عنوان کرده است، تشهی و امیختر سازیم